أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنهت الدائمة على الدائم المجموعين اللهم الفئن وجميع المشتغلين ورحمنا برحمه در استثناء اولا که مرحوم شیخ متعرض شدن متعرض عده از روایات شدن که خوندیم در روایت روایت قبلی که من عاملا ناس بود ذکرم معتبریه سماع ابن مهران استدلالش به مفهومه و فی صحیحه ابن بیعفور الواردت فی بیان الاداله بعد تعریف الاداله و دلیل الازاله ارز کردیم این روایت رو در آنه که بخواد نگاه بکنم این در کتب اصول در کتب اصول در بحث حجر واحد آمده در همه کتب نه در کتب معروف اهل سنت و در کتب فقر توی کتاب قضا و شهاده اصلی رو بحثی رو مطرح کردند با عنوان اصاطل که توضیح دادیم این بحث اصاطل اداره اصاسا بین اهل سنت مطرح بود و نه در روایت راوی در اونان مطرح بود اما چیزی که خیلی در منشأ طرح بین اهل سنت شد و محله اقتلاع شد بحث قضاوت بود چون مثلا باید دارم. چون چیه این بحث رو خیلی مختلف نه کرد چون دستاها غذایی دستشون نبود غذابات دستشون سنی ها مطرح کردن چون دستشون بود یکی از مشکلات ادالت شهود بود که باید آیند رو باشه این مشکل بود که ما مثلا یک فرد مسلمانیست یک بقالیست از چیز بد نگیم حرام نگیم همین کافی باشه برای ادالت همین که ندیدیم کافی باشه این اسمش اساطل است اما اینکه که بکنید بکنیم این نمیخوام. و عرض شد سابقا هم که وقتی که در میانه بعد از آمدن مبانی فلسفی و نها مسئله ملکه و حال فلان و فلان و کیفیات و به لحاظ بعضی از آثار ادالت رو معنی ملکه تفسیر کردن وقتی اینجا بیشتر بردی شدن که اثار ادالت جاری نمیشه چون ادالت این ملکه است با اصل نمیتونیم ملکه رو ثابت بکنیم به اون اینکه ما از یک شخصی حرام ندیدیم اثبات نمیشه که این آقا داریم ملکه عدالت این شد که بحث اصافل عداله پیش ما باز یک رنگ و بوی دیگری گرفت هر کردیم خود مرحوم علامه سابقا نرحز کردیم محامل و بحث بشن مرحوم علام قدس الله نفسه توی کتاب مختلف که قضا و باشه همین بحث اساطر اداره مطرح کرده از مسئله قرار بود بحث اساطر اداره رو مطرح کرده و کلماتی بر شیخ توسی در محسود اینها بود و خودیشون اختیارش اینه عبارت شیخ توسی در محسود این است که اشون اساطر اداره رو قبول دارد چون محسود کتب از کتب اهل سنت بوده شیخ به نظرم اینجور تصدیح نبرمونه برای و الله خیلی برید مبنی شیخ واقعا این باشه ظاهر عبارت شیخ تو مبسوط اساطر اداله رو قبول داره و خود علامه که بحث اساطر اداله رو مطرح کرده، اساطر اداله رو قبول ندارن شبا نشه ها دویه مختلف تصویر میکنه چرا حالا من این نکته رو ارز کردم گاییم به مناسود دیگه ارز میکنم چون مرمومت چونجهه که از جایست که به علامه اینا ظلم شده به مردم هم استاد در مقدمات معجم و در خلال کتاب کسی بسیاری ما که مثلا علامه این شخص در قسم اول ورده او توصیف کرده و لاله ها مبنیان على اساس العداله الا که ناناه قلوبه و در مقدمات هم داره که شاید علامه غالب اساتید العداله بوده اینی که افرادی رو توصیف کرده رو اساتید العداله خب تعجب از شنید استاد قدس الله و سر وقتی قال به اسات العداله شد که می‌خواد افراد این توصیح همه جا شعر این مصطفی‌ها رو توصیح می‌کنه الا <تصفيق> 15 زهر بنو الفسری یعنی می‌خواد که چند نفر رو تو باب اول اسماء القسم ال به همه رو توصیح میکنه. و ثانیاً اگه ایشون مراجعه به کتاب‌های خود که بحص مختلف تسریع میکنه به اسازندان چون زیاد اساتید این رو به کار بردن و لعل کلام علامه مبنی است مبنی آن علی اساتل عداله و لا نهلول به بله من چون علامه مضمون آقای شری در دفاع از ایشان و ایشان کلام علامه رو یعنی فرق ما بین علامه و نجاشی رو این میدونن که نجاشی با اسات الهس میگیم شهادت ایشان انه حسه ارجیب توسی قفل رو اما علامه چون این مسادر اولیه در اختیارش نبوده یه شهادت نیست اسات الادالت رو اساط الاداله ایشان حکم می کردن به قبول شخص اما مثل شیخ توصی یا نجاشی اینا اساطل حس در شهادشون جاره میشه روشن شده که اولا مرمون شیخ توسی قائل به اساطل است در کتاب محسود البته فکر نمی کنم چون میگم این بحث از سنیا آمد در گروه به اهل سنت وارد شده فکرم نمی چون واقعا چون به ذهن من میاد مرمون شیخ در محسود سری کرده محسود رو یعنی کتاب رو بر موانی شیعه تحصیح میکنه اما به نظر برد جا از قلمش در الان یک ابهامه هایی در کتاب مفسود وجود داره که شاید یک مقدارش به خاطر با شلوقی سر مرمومی شهر و قول نوشتن که شیخشون مبتلاب مذیعیت بود مراجعات زیاد داشته رضا این مثلا کارها در کتابیشون کتابیش واقع شد ارسان اون مطلب هم یه جیدیه شرح دادیم اصله مذیعیت و گیرت گفتیم که خیلی شاد واقعیت نداشته کیفه ماکم خب اینا درباره اول یه میگه اساس الادله را میگه اساس است کل ادله نمیگه این یک مطلب میکنه که من قائل نیستم این من ترجیحاً علاوه بر میگن لا الرو مبنی علی اساس الادله این که اولاً خود ایشون تصریح میفرماوند تصادفاً اون اسات شهاده اسات الحث رو که در شیخ طوسی ایشون داره میکنه خود شیخ طوسی اسات الادله قوام داره به عكس دیکی در شیخ طوسی زدن به اسات الحث در الاصول و اساطیر اداره در کتاب های فقهیشون خلقی بله نجاشی رو ما خبر نداریم من چند دفعه عرض کردم که ما مبانی علمی ماو نجاشی رو خبر نداریم اما مبنای علمی شیخ طوسی رو خبر داریم مبانی علمی ایشون رو کردم من خودم واقعا بیگناه بشه ولی در کتاب ایشون اومده هم من نسبت نمیدارم اتهام نمیدم از درس ایشون درآوردم با سانسور میکنه هر بوده با از قلم در از سانسور میکن. اینکه به مکان اما علامه به هر حال اساتید الحسه رو قبول نداریم واضی چنان میشن که سری پس این مطلب ایشان خیلی اساس نداره این راجع به این قسمت و بله مرحوم استاد در مقدمه معجم یک شخصی هست به نام احمد میسماईल که قومیه و تعهد در دست مرحوم برقی اشعری ورریز مرحوم علامه میگه که تا تضییفی نشود و جرحی نشود رضا قبول میکنه استاد به بی این بیشتر تمسک کرد که از این عبارت معلوم میشه که مرحوم علامه مبناش اینه که هر کسی جرح نشود با اساتید عداله اثبات عداله بکنه این نظر استاد غیر از اینکه لا الله همین مورد سر کتاب و خلاصه آمد عرضم که اون توضیحش هم ما عرض کردیم این شخص جزء رواه حدیث نیست مورخ میشاست این کتاب در تاریخ نوشته و این کتابش هم الان اگر باشه به نظر من مثلا ده هزار ورقه نمی شد، هزار و بیش هزار صفحه می شد، سهصد سه صفحه ام میخوام چابکان به نظرم چهل بیشتر میشه کتاب بیشه. بیشتر شو از این هر کالش، ولی بعضی اوقات چند صفحه چند صفحه یک کتاب بسیار بزرگی در تاریخ نوشته این شخص هیچ راوی روایت فرهنگی نیست، تا وقتی او از سال از سال هم داروی که چون در تاریخ و در خصوصیش هم جرهی نشده ما قبول میکنم ما خود ایچه اینه نه از حاضر و از باب تصادفات قضایه واقعیه نینا چی تصادفات پیش میاد خدا با این از این شخص از تاریخش هم یک سطر ما نرسیده این در هزار ورقه یک سطر علاق به ما نرسیده هیچ از این تاریخش هم نرسیده خیلی تاریخ هم که نداریشون تا. قلص به هر حال این به این جرد چون استاد کرارن حتی اده دیگه را منصوب میکنه به اصحاب اداله اینا روشن نیست این مطالی که ایشون اتفاده فرموندن روشن نیست حالا من این مقدمات را ارزکنم برای این نکته که مهمترین دلیلی که ادی از اصحاب ما قائل به اصحاب اداله شدن همین دوتا روایته این تمام مقدمات را محکم خالیشون از من معنا امرا ناسلن هم و بعدهم فر یخلفهم فهول منكب منثرواته و و حرمت غیبته از ازشون جواب در نعل و زهر عدل این زهر عدل که دیروزم توضیح دادم لكن از این مهمتر روایت ابن بیعفور در وجود داره ان دللا لو را نک ان کن ساکرن ل هیوبه میگن اگر از کسی انسان ایبی ندید میتونه حکم به اداد از فرق این مقنعی بوده که ادلی از اهل سنت داشتن و به این مسئله به شدت مبتلا بودن نه تو بحث خبر واحد قبل از تو خبر واحد چرا؟ اما عمده افتراهشون در باب غذا میتونه در خبر واحد هست کن رواد دیویس نفر پونسن نفر ایزار نفر پنجزار نفر میشه جمع دوش کرد اما شهاد در باب غذا باب کنترل نیست دو نفر با همگی دعوا می دو نفر دو نفر شاهد نه. دو نفر کی گفته عادلن؟ میگه خب سوال کردیم کسی چی در رابطه اینا نگفت پس ما عادل. این اساتید ادله اونجا خیلی تاثیر بوده تو باب قضا. این اساتید ادله تاثیر اساسی داره. روشن شد؟ یکیش اینه ان یکون ساترا به ایوبه حتی یه رو محفل مسلمین تفتیش شما ورا ادله که من اثرات این تفتیش و زده به ریبت. <تصفيق> البته دقت بفرمایید جوابی که اصحاب ما دادن اسالات الاداله جاری نیست ادالت باید احراز بشه مثلا اسات با اسال صحه اونها درست نمیشه و لذا دقت بفرمایید مثلا در باب امام جماعت هم همین میگن در فقه ما که مثلا ادالت امام باید احراز بشه اسالات الاداله کافی نیست یکم اینجاست اون بعضی از و غیر از ادالت رو هم بحث کردن مثلا من نمیدونم قرائت امام درسته سنه بگیم سه سهر قرائت ایشون درسته با اصل احراز بده اثبات بکنه. اونجا هم محل اختلاف ادی گفتن میشه با اصل ادعای گفتن نباید احراز بشه اصل کافی نیست البته این به طور کلی اینطوره اموری که منفی سلبیه با اصل اثباتش نمیکنه مثلا مگه اینکه عدم عزریه اموری که ایجابی با اصل اثباتش نمیکنه مگر اموری که معیم مثل اساسات العداله گفته شده مگر فلان این اصولی که علاخلاقه قاعده است تصریح میکنند و در ذیل این حدیث هم که حالا ایشون خوردن اینجا گفته شده که این حدیث مبارک ناظر و اساسات اداره نیست گفته از دلیل علازاک یعنی اگر شما در جامعه قرصیدین پس اساسات العداله رو احراز نمی کنیم. یعنی سوال میکنید کسی میگه من چیزی ازش نگیرم معله نامنا الا خیره معله چون اون چیزی این خودش دلیل است نه اینکه این خودش عدالته ولی اگه بخواسه اساسش عدالت باشه نمیشه اون بعد از نحوه نهوی دلیل اینه یعنی دلیل این نیست که شما برین تو خونهش سوال بکنین از زنش از بچهش yoksuz چه راهش نیست دلیل و علا این بحث دلیل و که. نه بحث اساتل اداله نه که بحث اساتل اداله بود دلیل میخاست دیگه هر مسلمانی عادله اونایی که قائل بودن از اهل سنت هر مسلمانی عادله این بود نکته گفتن مسلمان کافی عدل یعنی میخواد سوال از ادالتش بکن دل تو حرمت تفتیش علاکون رجل ساترن فتن تکیه اند انتفاعی انصافا تفتیش غیر از قیبته آدهشون یک ملازمه بین تفتیش و قیبت اگر مثلا این به سر به همون مناسبت یعنی قاضی دیگه لازم نیست بیا تفتیش کنه تو خونه دوربین بگذاره بررسی بکنه تو محل کارش دوربین بگذاره مورد از تفتیشی نرفتی به قیبت نذاره و مفهوم قولیه علیه السلام در روایت القمه المحکیه عن المواس این القمه همون کسیه که صاحب و همین دعای معروف و زیارت عاشورا است القمه بن محمد حزرمی اینا دو نفر برادر هستن یمنی هستن خیلی دودوش شیعان مخلصن القمه بن محمد و علی بکر محمد حزرمی اون علی بکر حزرمی برادر ایشونه اسمش عبدالله عبدالله بن محمد حزرمی و القمه این دو تا چند تا مناظره, مناظره با زیب دارن مال این دو برادره البته آی خوی نوشتن که توصیق مشروع بعد یه توصیق سریحی نداره یه نفر دیگه تو سند هست که اونم بیشون اشکال کردن توصیق سریح سریح نداره. اما از شواهد در میاد که مردمان بسیار معتقد و خیلی موالی اهل بیفت من نم ترقوبه اینه که یرتک بودن بند و نم یه شد علیه شاهدان فهمن اهل العدل و ادالت و صد از که دعوای دیگری بوده شیخ میخواد از مفهوم اون برای ما استفاده کنه و شهادت او فهمن اهل ادالت و صد و, و, و شهادت او مقبوله و, دقیقی و, و مقبوله این که ترکش میشه شهادت او مقبوله نشان میخواد بگه نرسیده اصل این حدیث ناظر به اون بوده حتی عده میگفتن نه هست مسلمان عادله تامه شد مثل کرامی اصحاب عادلهونو ادرا تارجو غرید این دیگه تامه شد و انکار فی نفسی مذبه بعد و من خطاب او به ما فی فهو خارج عن ولایت الله تعالی داخلان فی ولایت شیطان این و من خطاب او وا جمله استنافیس یعنی جمله تمام شد مطلب دیگری هم شروع کردن یا این عطف از بر جزا منلم ترهو به اینه که یرتکه با زنبن ادر تابهو به ما فیفا و خارجه چون این منلم ترهو به اصطران شرط یا منظر شرطه اگه موصول باشه فهومن اهل اداره این فهومن جزاشی یا منظر جزاش فهومن اهل اداره و و شهادت و مقبوله این دوم جزای دوم و این کانه فی نفسی مدرن و این دوتا تا به ادیب و سر و شاد و من اکتاب و به مافی این چین انسانی که لام او به اینه که بودن این هیجرت بودن برم این غیبتش حرامه پس این معناش اینه که اگر رأع به هی بودن این هیجرت کردم برم غیبتش جایزه ولی از ویژت خدا خارج نمیشه در لعنت تربه هر متن احیا و قبول شهادت علاكونهم من اهل ستر و كونهم من اهل اداله به اصطلاح و به اصلاح و شهادت او من اهل ستر و كونهم من اهل اداله یعنی ایشون اینجور مرحوم شیخ معنا میکنند که فاهوا من اهل العداله و دو تا صفت امام بر از که اینکه ادالتی به خاطر ادالت مقبول و او، به خاطر صرف من اختابه او به ما فی و خارجه بقول مرون شیخ لفه نشت مرتب نشت مرتب که دو تا ام بیاد و دو تا دیگه بیاد اولی به اولی بخاره دوبایی به دوبایی مرتبه به عکسش باشه مشبهشه یا مشبهه اختلاحشان در بدی مختلف پس در اینجا فهم ادالت و صدر شون من اهل الاداده اون مقبوده چون من اهل ست من اختابه و به ما فیفه و خارجه علا کونه من اهل ست و کونه من اهل اداله. علا طریق لفه و نشت مرتبه لف و نشر مرتبه هم هستن اول به اول دوم به دوم او علا اشتراط کل یا اینجور منها بکنیم یا نه این شرط رو کلن این طور بگیریم لبی ارتکر زنبن به کم نرو ج غیرمر ای امم حال معیه و مشهوبن عل ای بهها و مختظل محفهوم جواززار اختیاب معدمش شوند. خرج منه ها غیرال البته این بحث خوبه اما این مفهومش خیلی به سختی گرفته میشه. یعنی اواً این مبنی نیست برای اینکه واقع عاطفه باشه احتمال داره که باب استیننای باشه هستند ظه بیشتر به استیننافیی میخوره. فهو من اهل و سد و شهادت او مقبوله و من خطاب او خیلی بعیده که و قام قولی من خطاب او جملتا مستنفه غیر مكتوبه الجزاء خلاف الظاهر ما که به ظاهر نمی مگه این تا اینجا راجویی پس بنابر این مرحوم شیخ اشاره مای به عبارت صحاب داشتن و بعدم روایات اون روایاتی که لاغیت لمتجاهر للفاسق المعلل للمؤن بالفاس این روایات سنداً روشن نبود که توضیحش بدن دو تا روایت یا سه تا روایت مختلفی بود که با یکیش که هم سندش روشنه اون روایت ابن عربی عفوا البته اون یک مشکل دیگری داره من نمیخوام وارد بحث اون بشم گذاشش بشن یک جایش گیر دیگه داره اون کهش اینجا نیست آیا خویم اشاره فرموند خیلی طولانی میشه بحث و عمدش اون روایتی که من اعمال نست مفهوم او و این روایت علفمه اون روایت من اعمال نستم آیا خوی ازایف میگن یا روایت علفمه زایف اون روایت بنویی افرمی مشری یشون مطرح کردن که اختلاف نسخه هست در کتاب روایت بنویی افرمی بین شیخ و نجاشی بین شیخ و مفهوم کلی و لذا یشون میفهم روایت کردم یا نویی استاد نیستم یا دلالتشون روشن نیست انصافا این سه تا حدیث اخیر رو که با مفهوم میخواستن اسمار که خیلی واضح واضح نیست هر که ما کرارن و مرارن و تکرارن ما در باب مفهوم اشتباه نشه مفهوم یکی مقدار اشعار هست اگر گفت مثلا بر جراعالم رو احترام بکن اشعار داره به که مثلا غیر عالم نباشه اون چیزی در باب مفهوم مهمه وصول این اشعار به حد حجیت این مهمه اشعار که داره کلام به مفهوم اشعار داره لیکن اشعار کافی نیست برای حجیت برای اثبات و کافی نیست و مرموم استاد از راه روایات وارد نشدن اما از راه مفهوم و عرفی قیبت وارد شدن و درسته به نظر به راه راه درست. ارز کرده مقصد ما این مطلبی را هستیم که ناش ناش ناش نه شیخ نش نه استاد اون که عبارت سه رو ارجاعش به هم رو عرفی بدیم که ایش رو هم رو عرفی و مقدماتش گذرش دیگه نمیخواد توضیح بگیم این ساپن اگر به هم رو عرفی رو بکنیم و عبارت مسواه و سه هم به اون نسبت بدیم خیلی واضحه بگیم که بعد در عرف چون در عرف مباره که بلا یکتر بعض کن بعض بز. بلا یکتر بگیم خصوص به هم ارجاع اگر ارجاع به با عرف باشه در مفهوم غیبت دو نکته ای که از غیبت وقوعی بودنه مطرحه یکی اینکه شخص غائب باشه یکی اینکه صفت غائب باشه پس اگر متجاهره به فسقت یه غیبتی نیست دیگه. دیگه خیلی واضحه این راهی رو که مراجع استاد اخسان که به همین مفهوم و عرفی البته این توضیحی. چون توضیح ایشون لازمای توضیح خاصی کردیم اولا چون در خود قران آمده باید غیبت یک مفهوم و عرفی باشه ثانیا یک روایتی که از فیغمبر هست ذکر که اخاکی تصرف در این مفهوم و ارفی از کنیم با شواهدی که ملاحظه شده این صافت این یکی ثابت نشد ذکر که اخاکی ما یک رهول و سمه این ثابت نشد پس ما نگلیم به هم مفهوم و عرفی. و در مفهوم و ارفی هر دو شرطه هم شخص هم سفر هم شبز قاید باشه حاضر نباشه هم سفر حاضر نباشه اگر سفهد حاضر باشه غیبت صدونه می‌کنه غیبت صد انصافا حرف خوبیه کسی که الان ترسوندون انصاف شراد نمی‌خوشه کسی می عاشق چه غیبتیه اول خودش اعتباری که نیاز اصلا به این روایات نیست و من فکر می‌کنم این روایاتی که شماستون داغیته له که مثلا الفاسق المعلن بفسته فکر می‌کنن نظر من این نبوده <تصح> بیشتر اون که دیگه مثل مثلا امام جابر محسن به خاطر مثلا قلایق وقت مثلا قبایح اعمال اونها رو بگم یعنی بعضی از علمای نجف گفته بود که مرایجی که من هر کسی غیبت منو میکنه جایز میدارم الا طلواجی مرد ما رو باج غیبت میکنه یعنی امام جائر این فاصله عدلیه است اون بنده غیبت ما رو انجام میده این کارش مشکله تره تا عوام عوام مثلا حالا خیبت عادی حالا خاص این که تو روایت متجاذر احتیاج نداره به نفس انصافا درست حرف خوبیه به نظر من که نستم بیشتر نظر به اون بدعت و صاحب بدعت یکیش اون بوده که قیبت اون چون بعضیز این افرادی که صاحب بدعت بودن ظاهر سلا هم بودن ولی بعضی از ما اینا رو درش بکنیم آدم ظاهر سلا است اینا میگهتن نه چون آدم فاسدی هم نفسه و این داره تظاهر میکنه ما وظیفه خود رو میدونیم پی این رو بیان بکنی که بعضی از مسادیقش هم س بله فقط چیزی که هست دلیل لفظی چون نداریم دیگه اطلاق پیدا نمیشه دلیل لفظی چون نداریم دیگه باید بقیه رو با همین سر و عرفی درست کنیم اگر دلیل لفظی داشتیم لا قیبت لی متجاهره لی فاسب المعلم بفرسته خیلی خوب بود دلیل لفظی نداریم اون وقت هم چون دلیل لفظی نمیشه دلیل لبی میشه و مخصوصاً اگه برگردونید به معنای عرفی اگر فی ما بعد شک بکنیم اصلا احتمالا دیگه داخل در شعبه مفهومی بشه نه در شعبه حکمی چون در شعبه حکم اگر شکی در مخصص بشه یا به خاطر عام باشه یا با خاطر خاص باشه یا به خاطر مفهوم باشه یا به خاطر مثاق باشه یا به خاطر حکم باشه یا از موضوع باشه الی آخر فروضیه اون اسودی که جاری میشه برای اینکه به عام رجوع نه اینکه اون باشه مختل اینجا آم ما لبیه اگر در بعضی از نوارد شکی در مفهوم باشه که در شباط مفهومیه رجوع به آم نمیشه کرد کلا مخصوصا آم که لبی باشه اگر شباط مفهومیه او شباط مفهومیه که خود مثلا لی مفهوم لی تا که اقیمون مثلا اتموسیامه یا لی به مجرد سقوط قرص لیله یا تا ذهاب همره لی از ذهاب عمره به اصطلاح مشرمیه لین شروع میشه نه از سقوط قرص اونجا این اصطلاح هم میگن شبه مفهومی شبه حکمی جایستی در حکم در کن مثلا شبه برش پیدا بشه مثل الله هم من هم را قاتل که این شبه این که آیا واقع همه بنی امعیت رو میگیر یا فسا رو میگیر عدوله ولی کسی امعی باشه اما عدلا باشه مثلا ممکنه باشه این ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب اقوانی و صاحب کتاب مقاتل طالبی خودش امویه و شامی هم هست هم هم از اهل شامه است. این شیعه است، شیعه زیدیه، شیعه امامیه است. میزانزدان میشه اموی و شامی و شیعه گوارا و رجی هم شامی باشه هم امامی باشه بعد شیعه. حالا بدتر از شیعه زیدی هم باشه، این شیعه که قاظم میاد مصلا نه، مثل ما باشه که انجام نمیشه، واسه ما مثل شیعه زیدیه که قائل به قیام مسلحه اونم عموی باشه و شامی باشه الان که فماکان در بعضی از سوبر شک بلا حاضر رجوع به قواهد با مشکل برخورد میکنیم حالا این تا اینجا اصل برد لب از اینجا سمه مختزا اطلاق روایات وارد فرو این مسئله میشه پس قیوت متجاهد جایز شد فروعی داده فرع اول این از جمله تفریعات مسئله جواز بیعت متجاهر عنوان شده شیخ یک آیا بیعت فاسق متجاهر مطلقاً جایزه یا خصوص ما تجاهر به مثلا ما می‌دریم این آقا مثلا این بار مثال نظر به زن‌های اجنبی می‌کنه اما این رو ظاهر نیست ما خبر داریم اما تظاهر فرضون تجاهر به و خن می‌کنه فعلا. این فر دوم؟ بله حالا یادم این چیز دیگه از که. ولو معهدم قصد غر از بله فر اول این است که آیا در باب متجاهر قصد میخواد یا نه مثلا شخص است که متجاهره شما میگین اینها شراب میخوره اینه همین جوری یا نه باید قصدی در کار بخشید این فر اول چیز دیگه است من نخوندم اولش خونم متجاهره بیرم ولو معهدم قصد غر از این فر اول اینه که شما قیبت بکنید برای اینکه این, این متجاوز از از کاره خودش دست بر داره یا نه شما اصلا هیچ کاری دست بر نداره این فر اول اینه مخدوم شیخ میفرماید که ولو معدن قصه قر از انسای یجوز ذلقی براسته مطلب ایشان تو روایات تو ادله نمونده حتی حکم اعلی نمونده یعنی عرف صدورفی غیبت یکی چیزی داره شراب می‌خوره انی ما بگیم داره این شراب میخوره. حالا میخواد من قرزم این باشه که این آقا نهی از منکر به شد لا ببین بکنم یا اصلا قَرَظی باشه میخوام بگم چه خیبات نیست این حضور اصلا ولن اجد من بال به اعتبار قصد الغرض صحی و هو ارتدا و عن المنکر علی یعنی هر من اصلا کلامی تجاوره بدم هوا اصلا پرش این فرق اول نه تقدم عن شایلسانی احتمال اعتبار قصد از اون فی جواز سبب متجاهل روشن نشد اون رو سبب روشن نشد من اعترافی برن ظاهر نسل الفتوه ادم هم. و همون رویتو بود که اکثر البقیه اصفی روشن نشد برای ما امرو بطلا فرق دوم این فرق دوم هم بود که من فر اول گفتم و هر یه از خیاب المتجاهل فی غیر ما به فرصوی در شورب خم تجاهر داره اما من میدونم قماروازی هم میکنه کسی نیمیدونه میشه بگیم اون رو یا نه خب سه تا احتمال داده شده یک احتمال که امسال مرموم محقق بهرانی قائلا که قیبتش میشه کرد عنوان متجاهر لا قیبتی متجاهر هم سید میشه زاه این بچه اول وجه دوم قول دوم مثل زار مرمو استاد و دیگران و حاصلش اینه که نمیش چون این بحث مستور در تعریف قیبت آمده مستوریت نسبیه امره مطلق نیست فرقیه مثلا قماربازی این شخص مستوره اما شراب خوردنش علنیه خب چند شد؟ یکیش علنیه یکیش مستوره انیات خلف انسان مستور نسبت به قماربازیش مستوره نسبت به شراب خمرش مستور نیست پس کنابراین صدق میکنه قیبرت و جایز نیست احتمال سوم مثلا به این که تفسیر باشیم. بشیم گاهی اوقات یه گناه خیلی بزرگی رو علنی انجام میده یه گناه کوچکتری رو مخفیانه انجام میده پس مثلا شربخم که مثلا این جزب حالا بنابراه معروف هم اینطور هم این هم از جزب کباهره علنی انجام میده لیکن نظر به اجنبیات هم داره که جزو سخ لكن کسی خبر از نظر وجدانیاتش نداره من میدونم کسی خبر نداره اما شربخندش علادیه اینم قول سوم که ظاهر عبارت شیخ تفسی که اگر اون امر بزرگ رو انجام میده پس این امر کوچیکو میشه گفت این گناه صغیر رو ولو سرغم نکنه این سه تا احتمال من شعر احتمالاً ظاهر اصحاب هدای قدس الله سره مساله رو از این با گرفته که لاقی به تلموت جاهر این اطلاق داره این که الان شرب خنش الانیست یک فاسر معلن به فسقه این اطلاق داره شامل این که ما شرب خن را بگیم یا قمار هم میکنه اما کسی خبر نداره ما بگیم این زاهرن ایشون تمسل کن کسانی که میگن نه تجاهر به ظاهرا مرادشون این که ما در این جهدی بروازه سریحی لاقی به تلموت نداریم اون چه که داریم سر با اوفی است سر عرفی در گناه هزاراهره درسته اما در گناه غیر اضه سرو نمیکنه. پس اگر ما در دنبال سر و عروفی رفتیم صدق. و اما برچه کلام شیخ اوولیت یعنی این کسی که گناه بزرگ رو انجام میده الان با جل بابل حییا فرا هو مثل قلاقی بن این است یه گناه بزرگ رو مردم انجام میده خب ببتی به اولا گناه کوچیکی باشه، ذکر اون گناه مانعی نداره لیکن انصافا این بزرگ و کچیک دلیل برش نداریم ما ما یا در این لحظی نگاه میکنیم یا صدق ارفی اگر در این لحظی نگاه کنیم حق با حداره و انصافا حقی بردی نیمز علمو الفاسق معلم به چون در این لحظی ثابت نشد بنابراین عمده دلیل ما همون نقطه است، لذا صحیحش اینه که ما بر نکته عرفی در غیر ما تجاهر کی بحث میشه. واکه فکر میکنم کنم مرحوم استاد یک استثنای کوچیک اینجا داره مگر در مقدماتش. مثلا علنی شراب میخوره، خب مثلا میره خودش هم شراب میخرن خره مثلا با مثال. نه خونه مرحوم شراب مختکی واقعه. مثلا ما بیام بگیم این آقا خودش شراب درست میکنه، مقدماتش رو بگه. ایشون گفته شاید گفتن این قیبت نباشه. علایه حالا این نکته خاصی نداره مقدمات و غیر مقدمات نداره اگر اون حرام شد ما معتقدیم الفاظ با اون مقداری نیستن که ما تلفظ میکنیم. همیشه الفاظ مستبطن یک معانی وسیعی هستند و اختلاف فرهنگ ها هم مال این استبتانه. این استفتانی که فرص که مثلا کلمه آشورا دهم مثلا دهم ما اما آشورا که دهان محرم باشه پیش شیعه خیلی معنای بزرگی داره پیش سنی معنای نداره کلمه عاشورا این مال بخش مستتر کنه نه بخش لغویش در بخش لغویش چیزی نداره اگر کسی علنا شراب میخوره این در نظر عرف مستطانه که مثلا به شراب بخره بفروشه انگور بفروشه به شراب فرووش خودش رو شراب فروش بخره خودش میخونه درست بکنه عرف اینو جزو مجموعه شراب خوردن میبینن چیز مستقلی نمیبینن دقت کنید پس نقطه فنی این است که یا خود عمل یا مستتنات عمل مستور نباشند اگر مستور باشن این رو نمیشه. خود تجاوز هم امر نسبیه دیگه در کوچه شماره یک مثلا این امر اون فرع دیگه‌یه. پس اون در شهر قم تجاوز داره در شهر تهران نداره. یعنی من تهران فسخ وجود میکنه تو شهر قم نداره. خب طبعا تو تهران ذریغه عوصا بده که تجاهل بده تو قم که تجاهل نداره فرع ثوام فرع سوم چهارم وقت فرع سوم شما گزارش گذاری کنی ص ملمرات به متجاهل من تجاهل بر قبیح و نبو قبیه هم بله این هست این در باب نهی از منکر هم ذکر شده به درستی هم هست حالا فرض کنیم مثلا شراب خرمایی میخوره این اعتقاد که جایزه و به تو خودشو شراب خور خودشو شاربال شاربا. نمیدونه یا فرص که مثلا سابقا سنی بوده هنفی بوده مثلا سنی میگفتن جایزه ایشون هم گفته جایزه نفهمیده که در چیه این کار حرامه یا واقعا قضی داره یا واقعا اعتبادش نه اعتباده یا تقلیده انصافا به این مقدار بون بگن متجاهر در صورتی که خودش اون رو قبیح نمیدونه مشکله اینم فر فرع چهارم که الان ایشون فرمودن ای کسی در که میگه تهران شراب میخوره علنی اون اهل محله نمیگن شراب خورد اما تو قوم ساتر بر نحس خودشه الان که خب خارج میگه می تو خارج شراب میخوره مین تو قوم خیلی خودش از ذلت و تقو نشون حالا این چطور این ظاهرا همون مفهوم نسبی که گفتیم سر میکنه تو قوم که مردم قم نمی و ظاهر سلام هست حق نداره رو غیبت بکنه مم. بله ثابت ایشو... نشد فر بله بعد فر احود الاختصار على ذکر المتجاهل بمالا یک رهوشو همون ذکر رهو. اون دلیلی برش نداشتیم بله نه امرو تعاظا هنزر محو بدالک دون ظهوری لم یغده جاز مسئله زم رفت به غیبت مبنای صاحب هدایت رو بپذیریم. دیگه از ظاهر عمر نیستی باشه رو دیگه قبول نمی کنن. و هادا بای بین از سب و القیبه خیلی تعجب ازشون سب با قیبه دو مفهوم کاملا متقایری وقتی رفتی به هم نداره. ممکنه بعضی از مسادیقش به اسطلاح سب عبارت از بکار بردن الفاظیست که در نظر قفق قبض قبیهه مثلا بشه که سب قلاق اونجوری قیبه اونا یک میکنه. <تصفيق> خوش هم میاد که شراب بخورم نیم خواسته کسی بفهم <تصفيق> سب و غیبت دوتا محرومه اینی که استاد فهمدن اون خسوم مروش این در بعض از مسئله رفتی به هم میدارن سب و این چیز و غیبت چیز دیگریه لعنم چیز خالصیه سب و لعن و غیبت و اینها به هم دیگه رفتی ندارن و الله علا محمد و آله حتی تابریم استثنای دوم این استثنای اول تا سه فوت